چه میخوانی؟ مثل این که موضوع جالبی است. بله این مقاله در مورد انرژی هسته‌ای در ایران است. خب چه نوشته است؟ دوست دارم چیزهایی در این مورد بدانم. در سال 1957 آژانس المللی انرژی اتمی تشکیل شد. جالب است که یک سال بعد ایران عضو این آژانس شد. پس ایرانیها سالها قبل به فکر استفاده از انرژی هسته‌ای بودند. بله، ایران در زمینه تحقیقات هسته‌ای سابقه ای طولانی دارد. آیا ایران نیروگاه اتمی دارد؟ بله، در بندر بوشهر در جنوب ایران ساخت این نیروگاه در سال 1975 شروع شد واقعا؟ پس این نیروگاه قدیمی است بله البته در زمان جنگ صدام علیه ایران چند سال ساخت آن متوقف شد الان در این نیروگاه چه کسانی فعالیت می ایرانی‌ها یا خارجی‌ها دانشمندان ایرانی در کنار متخصصان خارجی در این نیروگاه مشغول کار هستند وقتی مقاله را خواندی روزنامه را به من بده من نیز دوست دارم آن را بخوانم